داستان ها و افسانه های مردم مغولستان نویسنده خورل مترجم فاطمه شاه ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده حمید رضا شامل. با سلام و درود خدمت شما عزیزان همیشه همراه با یکی دیگر از داستانهای مردم مقالصان در خدمت شما هستم با امیدوارم که تا پایان این داستان هم با بنده هم سفر باشید. مهارت های مفید. به نام خدا روز و روزگاری پیرمردی با همسرش و پسر جوانش زندگی میکردند. پیرمرد سیصد اسب داشت و با پرورش و نگهداری از اسبا زندگی خود رو میگسند. پیرمرد به پسر خودش خیلی علاقه بود و آرزو داشت اون راهب بشه و همین خاطر اون رو به یک راهب بودایی سپرد و برای این کار صد اسب به راهب دست داد. یک سال از آموزش پسر گذشت و پسر به خونه برگشت. پدر از پسر پرسید در این یک سال چه چیزایی یاد گرفتی؟ پسر گفت من شدرنجباز ماهری شدم. پدر وقتی شنید پسرش در این یک سال فقط بازی شدرنز را آموخته خیلی ناراحت شد و تصمیم گرفت او را برای یک سال دیگه به نزد راهب بفرسته این بار هم یک اسب از بهترین اسب‌های خودش رو به عنوان پاداش به راه پدیه کرد سال دوم هم گذشت و پسر به خونه برگشت و پیرمرد ازش پرسید در این یک سال چه چیزی آموختی؟ پسر پاسخ داد آ را خوب یاد گرفتن. این دفعه هم پیرمرد از اینکه پسرش در تموم مدت یک سال فقط آواز را آموخته بود بسیار ناامید و معیوس شد. اما پیرمرد مرد هنوز مصمم بود که پسرش راهب بشه بنابراین دوباره اون رو پیش معلمش فرستاد و یک سرد اسب باقی مونده رو به اون پیشکش کرد. در پایان سال سوم وقتی پسر به خونه برگشت، پدر پرسید، خب، در این سال چه چیزایی یاد گرفتی؟ پسر گفت، پدرشان، من خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. پدر از ناراحتی آهی کشید و گفت، ولی من آرزو داشتم تو راهب بشی. تمام داراییم رو خرج این کار کردم، اما افسوس به آرزوم نرسیدم و هیچ پولی برای ادامه زندگی نداری. پسر که از ناراحتی پدر دار شده بود اون را دلداری داد و گفت قنگی نباش پدر من میدونم که گنجینه حاکم کجاست به اونجا میرم و گوهری رو به دست میرم و با پولی که از فروشون به دست میرم به راحتی زندگی میکنیم غروب همون روز هنگامی که خورشید مثل یک سینی بزرگ مسی پشت کوه کوها پنهون میشد پسر به قصر حاکم رفت و که هوا کاملا تاریک شد از پنجره خزانه قطر حاکم گوهر بزرگ و گرانبهایی رو برداشت و جیبش گذاشت اما قبل از اینکه بتونه فرار کنه نگهبانها به سرش ریختند و اون رو دستگیر کردند وقتی پسر رو نزد حاکم بردند حاکم از او که جرأت کرده بود وارد خزانه بشه خیلی عصبی شده بود دستور داد اون رو تا آخر عمر به زندان بیندازند و فاصله زندان تا قصر هم سر روز طول میکشید. تا به زندان برسند دونگه افوان کلو و حاکم معمور کرد که پسر رو ربونه زندان کنند. اونها صبح زود با صدای اولین خروش را افتادند و شب به دهکده کوچیک رسیدند تا استراحت کنند اتباقا در اون شب عروسی دختر کتگدا بود و همه جا جشن و پایکوبی بود نگهبانان پسر جوان را در بیرون یکی از چادرها قل و زنجیر کردند و برای شرکت در جشن عروسی رفتند پسر که از تنها نشستن خسته شده بود به یاد آوازی افتاد که راهب به اون آموخته بود شروع کرد به آواز خوندن آوازی که در اون دیار خیلی معروف نبود همه اونها آواز اون خوش صدا رو شنیده بودند و خوششون اومده بود کت خدا خیلی تحت تأثیر قراری گرفته بود و دستور داد برای یک شب اون رو آزاد کنند و به جشن عروسی بیارند. اون شب پسر مجلس عروسی رو با آوازهای خودش گرم و همه رو خوشحال کرد نیمه های شب دونگهبان گول پیکرد اونقدر خورده و نوشیده بودن دو دختیده بودند که خسته و بیرمق گوشهی خوابشون برد. جوان آهسته به سراغ اونها رفت و از جیب لباسشون فرمان حاکم رو بیرون آورد و در حالی که نگهبانان خور پف میگردن متن نامه حاکم رو عوض کرد و نوشت طبق این دستور به این پسر جوان و دلیل مقام فرماندهی بدهید و افرادی رو که با اون هستن به زندان بیندازید و بعد دوباره نامه رو درون جیب نگهبانهای های خواب آلوده گذاشت و اما پس از سه روز سفر اونها به پایان رسید اون رو به حضور فرمانده زندان بردند و فرمان حاکم رو به اون دادن فرمانده کاملا طبق دستور نامه عمل کرد و اون نگهبانها ها رو به زندان انداخت و پسر رو فرمانده زندان کرد البته فرمانده شدن به این آسونی هم نبود. رسم اونجا بر این بود که فرمانده جدیدی برای گرفتن مقام باید در مسابقات شطرنج برنده میشد. پسر جوان چند دور بازی کرد و در هر دور پیروز شد سرانجام انجام فرمانده زندان شد. پس از مدتی پسر جوان چند نفر رو به دنبال پدر و مادر سالخورده خودش فرستاد و از اون پس بقیه عمرشون رو به خوبی و خوشی سپری کردند بله دوستان جان این هم یکی دیگه از قصه های مردم مقالستان بود که تقلیم حضور شما شد و امیدوارم که از این داستان هم خوشتون اومده باشه و در داستان بعدی هم همسفر بابنده باشید شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا داستان دیگه خدا و نگهدار شما